الشمس دران هنگام که خورشید در هم پیچید شبد و ایدن نجوم کدرت بعد دران هنگام که ستارگان بیفروخ شوند و ایدن جفال خویرد بعد دران هنگام که کوها به حرکت در او و ایدن لیلت هنگامی که با حمل ده ماهه خود به حال خیش گذاشته شوند و در حوشی وست. با دران هنگام که وحوش جمع شوند و در آن دران هنگام که دریاها بر سوخته شوند و النفوس زوجت بار در دران هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد واذا الموعودة هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود بی بین قتلت که به کدامی گناه کشته شدند و ایده خوخه نشیرت به دران هنگام که نام حالی اعمال گشوده شبد و ایده السماء گشیقت به دران هنگام که پرده از روی آسمن برگرفت شبد و ایده الجحیم سعیرت به دران هنگام که دو تخ شعول برگردد و ایدن جنت ازلفت بعد دران هنگام که بهشت نسید شبد علمت نفس ما احضرت آرین دران موقع هر کس می داند چیزی چی را آماده کرده فلا اقسم بالخنت پس سوگان به ستارگانی که باز می کردن حرکت می کنند و از دیده ها می شوند. و قسم به شب هنگامی که پوشت کند و به آخر رسد و الصبح و که تنفس کند اینه لقوم رسول کریم که بگمان این کلام فرستادی بزرگواری ذی قوت عند ذی العرش محیم که صاحب قدرت است و نصد خداوند صاحب عرش با مطاعن سمع امین سر و امین است و ما صاحب شما دیوانه نیست و او رسول الهی را در افق روشن مشاهده کرد او نسبت به آنچه از طریق بحثی در یافت داشته باغ ندارد دا. با این قرآن گفته شیطان رجیم نیست پس ذهونپس به کجا میروید ن قرآن چیزی جز تزكری برای جهانیان نیست لمنشاءمنم ان برای آنها که میخواهند راست مستقیم در پیش گیرند و ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين با شما نمیخواد مگر این اینکه خداpand پرواکاور جهانیان بخواهد